أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وآله الطاهرين خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم صبح خیر عرض میکنم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار هستید و انشاءالله که به لطف خدا از هر گونه بلایی هم به ما در مباحث گذشته خودمون پنج بحر از بحور شعری رو به طور کامل خوندیم امروز بهر ششم رو با هم میخونیم انشاءالله و این بحر ششم که بهر رمل نامیده شده بهری است که خیلی متداوله در شعرهای عربی است حتی در زبان شعرا این بهر رو تعبیر ازش به همار و شعرا میکنند چرا چون سوار شدن بر همار علاق راحتتر از همه چهار پایان دیگره یعنی این بهر به دلیل اینکه سهولت در سرودن در او هست به این نام نامیده شده. پس هر چیزی هم که سرودن در او راحتتر باشه، و کار با او آسان تر باشه خب استقبال از او هم بیشتره بنابراین بهر رمل رو ما خیلی خیلی کسی رو دوران یعنی خیلی خیلی چرخشش رو در زبان شعری شعراء بالا می بینیم. بسیار زیاد قصیده در این بهر سروده شده چون وزن راحتی است و راحتی اون باعث آمدن قصاید زیادی در این وزن شده حالا نگاه کنید مفتاح بحر بحر الرمل مفتاح البحر رمل العبهر ترویه سقاط فائلاتون فائلاتون فائلاتون یک تفعیل هست شش مرتبه تکرار میشه سه مرتبه در صدر و سه مرتبه در عجز فاعلاتن فاعلاتن فالاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن هم بهرش روانه هم سرعت داره و یک تفعیل شش مرتبه تکرار میشه میگه رمل العبهر رمل از بحرهای شعری ترویح روایت میکند آن را افتقاد جمع سغه یعنی افراد مورد اعتماد در علم عروض بزرگان المعروس روایت میکنند بهر رمل رو بدین گونه فالاتن فا فالاتن فالاتن فالاتن فالتن فا الت فا فا رمل العبهره ترویه الثقاتو فالاتن فا فالاتن فالاتن فا خب پس این بهر رو کلیدش رو دانستیم رمل العبهوره مبتدا مزاق مزاقان علی مبتدا ترویه ثقات جمله خبر ترویح فعل و مفعوله اونها میخوره به رمل از فائل. این جمله فعلیه خبر مبتداست رمل العبهوره ترویه استقاط و فائلاتون فائلاتون فائلاتون فائلات یکی دو مرتبه تکرارش کردم کلید بحر رو ترکیب کردن که در ذهن خودتون بتونید حفظش کنید و هوم بحرون یتعلف من تفعیلت فاعلاتن و این بحریست که تشکیل شده از تفعیله فائلاتون خب تتکر رو این جمله حال است این است که تشکیل شده از تفعیله فاعلاتون در حالی که تتکر رو در حالی که این تفعیله تکرار میشه ست تمرات شیش مرتبه الان نهبت تالی به شکلی که در زیر میبینی فائلاتون فائلاتون فائلاتون فائلاتون فائلاتون خب از تغییرات و لتی تتر و علاها بر تغییراتی که آرز میشه بر این بر تغییراتی که بر این بهر آرز میشه سه تقییر رو ذکر میکنه یک زهاف الخبن که البته این رو قبلا هم داشتیم به تفعیل که داخل میشه میگن مخبونه زهاف و حذف هزفل حرف از ثانی از ساکن منت تفعیلت حذف حرف دوم ساکن از تفعیلت فا اون الف حذف حرف دوم ساکن است تبین و یلحق و فائلاتون فا و و حائلا فائلاتون و اینو قبلا هم داشتیم فائلاتون تغییر پیدا کند به فائلاتون دو دومی علت علت و و اون تفعیلی که بهش داخل بشه بهش میگن محزوفه محزوفه و یه حذف از سبب الخفیف من آخر تفعیلت سبب خفیف یعنی یه خط تیره از آخر تفعیل حذف بشه فا ای لاتن. فا ای لاتن. اگر دقت کنید ما بخواییم طبق قواعد سابقمون بگیم فایلاتون یه سبب خفیف داره یعنی خط تیره بعد یه یو و یه سبب خفیف دیگه بهش میگن وطد مجموع بعد یه سبب خفیف یعنی اون سبب خفیف آخر خط تیره رو حذف کنیم یه حذف و از سبب الخفیف من آخر تفعیلته و هی نمایل حق و فاعلاتن یغیرها الی فاعل فاعل ی علت ها علت ها اگر یادتون باشه در ضرب و عروز یافت میشد و علت از خصوصیاتش این بود که باید ادامه پیدا کرد زعاف در همه جا پیدا می شد از خصوصیاتش این بود که قابل ادامه نبود مگر استثنان در هر کدوم یوغیر و و یجوز و انیل حق فایلون فا به این که محظوفه هست جایز داخل بشه فایلون فا به این داخل بشه چی؟ و یجوز و انیل حقه فایلون فا زعاف زحاف خبر بهش داخل یعنی دومین حرف ساکنشو حذف کنه درست شد و اون موقع فیغیر و حایلا فعیلون پس تغییرش بده به فعلن این زحافه پس علت حذف حذف سبب خفیف از آخر دفعیله فایلاتون میشه فایلون جایزه جایزه که بهش ذحاف خبن داخل شه و بشه فعلن فائلان تغییر پیدا کند به فعل. اینم راحت بود خیلی سخت نبود تا حالا چیز جدیدی نکنید سوم علت قصر علت قصر هم باز به اونی که این داخل بشه میگن مقصوره مقصوره تفعیلن رو میگن مقصوره یعنی علت بس بشتادش و یه و ساکنه از سبب خفیف من آخر تفعیلته و تسکین ما قبله سبب خفیف یه متحرک یه ساکن دیگه ساکنش حذف کنیم متحرکش میمونه متحرکش هم ساکن کنیم یعنی در واقع خط تیره رو برداریم یه نقطه بگذاریم یه سکون بگذاریم یه حذف و ساکنه از سبب خفیفه من آخر تفیرت حذف ساکن سبب خفیف از آخر تفعیله یا حذف فساکن سبب خفیف من آخر التثبیت و تسکین او از وجه حذفه و تسکین او ما قبله و هی قول و الا و اگه به فاعلاتن داخل بشه یغیرها الا فاعلان فاعلا یغیرها الا فائلان تمام شد پس اگه بخوایم باز به طور خلاصه تکرار بکنیم بهر رمل رو بهر رمل از شش و تشکیل شده فائلاتون فائلاتون فائلاتون فائلاتون فائلاتون تغییراتی هم که توش هست یه زهاف خبر که این زهاف خبر میاد فائلاتون رو تغییر میده به فعلاتن این زهافه دوم علت حذفش داخل میشه و میاد فاعلاتون رو در علت حذف تبدیل میکنه به فاعلان گاهی اوقات به این فاعلن داخل میشه ذهاب خبر و میشه فاعلان و یه علت غصر داریم در اینجا اون علت غصر میاد فاعلاتون را تبدیل میکنه به فاعلان فائلاتون رو تبدیل میکنه به فائلان اون سبب خفیف رو بر میداره یه نقطه میگذاره میشه فائلان این کل مبحثی بود که ما در رابطه با بحر رمل برای شما بیان کردیم و همین مقدار رو باید بلد باشیم تا بتونیم بحر رمل رو بخونیم حالا انواع بحر رمل انواعش یاتی هاذل بهر تام و, و مجزوء این بهر تام داره یعنی 6 تا فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن تام بشه مجزوء داره یعنی یه جز از این و یه جز از اون ور افتاده یعنی دیگه خیلی اون بهر تند میشه سریع میشه ف فلات ها فلات دوتا دو تا دو تا دو تا دوتا یعتی حاضل به و تام من و مجزوعت. و کل من هم هر کدوم از این تام و مجزو انواع خودشو داره. علیک شهر حها علیک، اسم فعل یعنی خوز یعنی بگیر شرحها ها مفعولشه الیک شرحه ها یعنی خوز شرحها پس بگیر توضیحات این انواع رو شرحه ها به انواع. پس انواع بهر رمل می آید این بهر رمل به گونه تام و به گونه مجزوع دونم و هر یک از این دو انواعی دارد پس بگیر انواع شرح انواع این بهر رمل را ارعی که شرحها و طبیعی ها تبیین و طبیان هر دو مسترند دوست شد طبیان الهی که شرح ها و تبیین ها گفته طبیانه ها طبیان و تبیین یک تبیین یعنی چی؟ یعنی بیان شرح و بیان این انواع را دریافت کن پس بگیر شرح و بیان این انواع را یک میوارده مدحس میشه ار و اتام خب معلوم یکش رمل تام دوش رمل مجزوعه یک رمل تامه که انواع و اقسامی داره دو رمل مجزوعه که خواهیم خوند انواع هر کدوم رو بخونیم بحث تمام است در عمل و تام و, و یعتی رمل تام سه نوع رسیده. میتونید حدس بزنید نوعشو دیگه براتون سخت نیست چون ما دوتا تا علت داریم. یکی رمل تام میه که هیچی توش نباشه، یعنی صحیح فایلاتون فایلاتون فایلاتون فایلاتون فایلاتون فات یکی رمل تامیه که مقصور باشه یکی هم رمل تامیه که محذوف باشه م? چون دوتا علت داشتیم دیگه رمل تام محذوف رمل تام مقصور یکی هم رملی که تامه و هیچ کدوم از اینها نیست صحیحه بشه سرس. شما دو تا علت داریم علت هست علت قصر هر کدوم از اینها باید ادامه پیدا کنه میشه دو نوع یکی هم رملی که هیچ کدوم از این دو علت درش نیست صحیح هست پس میشه سنون اولم صحیح رو میخونیم که اصل بعد محضوف و مقصور رو میخونیم نوع تام به رمل تموم میشه خیلی راحت شده از لحاظ فهم یعنی یک کسی نگاه که بکنه قشنگ به طور استدلالی میتونه اینها رو بفهم رمل تام و یعنی علا سلاست انواین مشهورتن نوع مشهور هی، ار رملو از تام و از صحیح رمل تام صحیح نه علت غصر توشه نه علت هست ولی ذهاب چه میتونه باشه حالا نگاه کنید هوه ماکانت تفعیلت و عروضه هی شما که گفتید صحیحه صحیح که نباید علت توش باشه ولی از این ور میگه هوه ماکانت تفعیلت و عروضه هی محزوفت تفعیله عروضش یعنی تفعیل سه و است فایلون الا مگر فلو بیت المسره مگر در بیت المسره که در بیت المسره عروض تابع ضرب میشه اونجا میشه صحیح میشه سالم درست شد اما و تفعیل تو زرب هیلا فایلاتون زربش فایلاتونه درست مثل قول احمد شهری حالا نگاه کنید پس این طور میشه یه لحظه فائلاتون فائلاتون فائلون فائلاتون یعنی مثل اول فرضم بکنید که بیت بیت مسرع نیست فائلاتون فائلاتون فائلون فائلاتون فائلاتون فائلاتون یعنی از شیشتا سومیش میشه فاعلون بقیه فیلاتون فیلاتون فیلاتون فاعلون فیلاتون فیلاتون فیلاتون حالا اگه بیت مسرع باشه چه جور میشه اینطور فیلاتون فیلاتون فیلاتون فیلاتون فیلاتون فیلاتون حالا من دو تا بیت دو تا بیتی که اولی مسرع است و دومی مسرع نیست پشت سر هم برای شما میگم شش اول که بیت مسرعی فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات شش تای دوم که بیت مسرع نیست فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فالاتن فالاتن فاعلاتن بقیه هم مثل این دومی میاد اما اون سوال که شما گفتید که به این میگیم رمل تام صحیح یعنی چیز قابل ادامه توش نیست در صورتی که ما میبینیم علت توش است محذوف است و این علت حذف هم در عروزشه و ادامه هم پیدا میکنه بهتر بیستومش هم باز میشه فایلاتون فایلاتون فایلاتون فایلاتون فایلاتون فایلاتون, فایلاتون. پس چطور شما میگید؟ نگاه کنید این سوال رو جوابش اینه که اگر شما دومی رو ببینید نوع دوم نوع دوم باز میگه غبه ماکانت تفعیلت و عروزهی محسوسه تفعیله عروزش است از فایلان نوع رو ببینید جیم میگه خبا ماکانت تفعیلت و عروزهی محضوفه فایلن چی شد؟ به دلیل اینکه در رمل تام عروزش همیشه محضوفه است عروزش همیشه محظوف است پس بنابراین این این نمیتونه منبع تقسیم باشه هر سه قسمش رمل تام به صحیح رمل تام به رمل تام به مکسور هر سه تا مصرع اولشون که عروض توشه عروض میشه فایلون پس اینو دیگه نمیتونیم ملاک تقسیم قرار بدیم پس تقسیم میره روی کدوم میره روی زرب اگه ضرب باالاتن باشه میشه رمل تام صحیح اگه ضرب فاعلان باشه میشه رمل تام محذوف اگه فاعلان باشه اگر ضرب فاعلان باشه میشه رمل تام مکسور پس اگر یک زمان در امتحان به شما از این بهر داده شد شما مصره اول رو تختی کردیدیدی اومد فایلاتون فایلاتون فایلون زور اینجا نباید بگی که این رمل تام محذوفه نه بگی هست دوش دیدیم این رمل تام. نه نه میار زربشه اگه ضربش. تا تختی کردی اومد فاعلاتون میشه رمل تام صحیح اگه تختی کردی آمد فائلن میشه رمل تام محذوف اگر تختی کردی اومد فاعلان میشه رمل تام مقسور این چون عروزش در هر سه قسم محذوف است پس ملاک عروز نیست اینو ما اگر ضربش رو تقطی کردیم یعنی شمین تفعیله میتونیم اسم بحر رمل رو از توش در بیاریم پس رمل تام هو و ماکان تفعیلت و عروزهی محضوفتن فائلن الا مگر فی البیت مسرعه مگر در بیت مسرعه و تفعیلت و ضربهی علا فایلاتون و تفعیله ضربش میاد بر وزن فاعلاتن مثل قول احمد شوقی نحو قول احمد شوقیه فلویت المسرعه و تفعیلت و ضربهی علا فایلاتون نحو قول احمد شوقیه خب دو بیت برامون آورده الان میفهمیم چرا دو بیت بیت اول رو کنید مکانا بیانا آیا بیت مسرح هست یا نیست؟ بله اما بیت دوم نگاه کنید المدا رحانا آیا بیت مسرعه خیر خب طبق اونچه که تو ذهن داریم اولی که بیت مسرعه باید دربیاد فایلاتن فالاتن فالاتن فالاتن فالاتن فایلاتن دومی که غیر مسرعه باید دربیاد فایلاتن فالاتن فاعلن فالاتن فالاتن فایلاتن درست حالا بریم ببینیم در میاد یا نه اول بیت رو خوب دقت کنید ابتغور ابتغا یبتبی ابتغاءن یعنی طلب ابتغا یعنی طلبه طلب کرد ابتغو فعل یعنی طلب کنید بخواهید ابتقو ناسیت الشمس ناسیه یعنی پیشانی جمعش نواسی الشمس یعنی این خورشید طلب کنید پیشانی خورشید را دنبال پیشانی خورشید باشید مکانن از جهت جا یعنی دنبال این باشید که جای شما پیشانی خورشید باشد یعنی برید و بنشینید بر پیشانی خورشید بالاترین نقطه عالم خورشید بالاترین نقطه پیشانی بر پیشانی خورشید نشینید یعنی چی یعنی عدم های پست طلبی نباشید مکان خود را در پیشانی خورشید جستجو کنید ابتغو تاو ناسیت الشمس مکانا ناسیت مفعول بتض مکانن تمیز پیشانی خورشید را به عنوان جایگاه برای خود طلب کنید خوب و خضو الگمت علما علمن و بیان علمن و بیانن به هم عطف شده. و خضو و وواتف است خضو اتو به جای افتقوست و بگیرید القمته قمه قنه و قاف قلتون و قله قلتون قلتون خودمون استفاده میکنید یکی قلتون قنهی کو قمهی کو قمت الجبله قنة الجبله قلت الجبله یکی جمع قمه میشه قمم قلها خضو القمت الام داری عن الام الام جنسه یعنی کل یعنی تمامی مثل ان الانسان لفی خسر یعنی ان کل انسان لفی خسر این و خضو القمته یعنی چی یعنی و بگیرید هر ای را فتح کنید هر ای را از جهت علم و بیان یعنی تمامی قلعه علم و بیان را در نوردید فرد کنید یعنی در علم و بیان سرآمد همه باشید تمامی قلعه را فرد کنید به مردم خودش میگه دیگه ای مردم جایگاه پایین رو نگزینید کوتهبین نباشید پیشانی خورشید را مکان خود طلب کنید و هر قله ای را در علم و بیان فتح کنید بگیرید خوب وطلبوا باز است به جای ابتقو وطلبو بلعبقریات المدا المدا مفعول اطلبوست وطلبو المدا مدا یعنی قایت هدف نقطه پایان جه المدا واطلبو الفلام داره المدا مثل نه ع القمه یعنی کل و طلب کنید هر نقطه پایانی را هر هدفی را طلب کنید به کمک چی بل این افلام از مزافن یعنی به کم یعنی ابغری یعنی نابغه ابغریاتکم کن یعنی نابغگی خودتون با نابغه های خودتون با نوابغ خودتون به کمک نوابغ خودتون اطلبو طلب کنید المدا هر نقطه پایانی رو هر هدفی را طلب کنید و هر هدفی را بزنید با نوابق خود بتلبو بلعبقریاتل مد خوب شعر شعر ببین خیلی آهنگش تنده ها گفت بر بلندای پیشانی خورشید بشینید آنجا را طلب کنید و هر گله علم و بیانی را فعت کنید و آنجا را بگیرید و هر هدف دور دستی را طلب کنید و هر نقطه پایانی را برسید با نوابغ خود چرا؟ چرا میگه چرا نمره بیست رو فقط طالب باشید؟ میگه چون این لعصه این جمله استیناف بیانیه جواب سوال مقدره چرا فقط بیست را طالب شویم چرا بالاترین بهترین را بخواهیم میگه لیس کل الخیل یشهدن رهانا زیرا لیس کل الخیل الخیل یعنی سواران زیرا تمامی سواران کل الخیل لیس نه. شاهد نخواهند بود عرهان فهان یعنی اون جایزه اون جایزه مسابقه رو به همه اونهایی که آمدن در مسابقه نمیدهند جایزه مسابقه رو به همه بگید نمیدن جایزه رو به کی میدن به اون که نفر اوله اون مدال طلا را میگیرد، دنبال مدال طلا باشید لیس کلل خیر زیرا تمام آنهایی که مسابقه میدهند تمام اون اسب سواران تمام اون سوارکاران شاهد نخواهند بود جایزه مسابقه را. بشنگ بود شهرش خواستم یه مضوع بودون نظم نصرم کار کرده باشید شعر رو بیان کردم که بتونید شعر رو کامل بفهم. کل الخیل مضاف مضاف هاین اسم لعیس است یشهد نرهانا فعل و فاعل و مفعول این جمله خبر لعیس است زیرا تمام سواران که در میدان مصادر مسابقه می دهند موفق به کسب جایزه نمی‌شدند جایزه را به کسی میدن که نفر اول باشد شما هم نفر اول شوید نه نون فاعلشه فعل و فاعل الرها نه مفعول که اشبال کرده ازره ها لا خب شعر رو خوب فهمیدید حالا نگاه کنید ببینیم تختی کنیم بیت اولمون هم که بیت مصراع اید تبونا اید فائلاتن سالم است هیچ مشکلی نداره سیادت شم ناسیت شم فعلاتون باشو محذوف است، چی مخبون است و علت اللت... چی خبنم در هش اومده هیچ مشکلی نداره میتونستم فاعلاتن بیاد سیت شم فعلاتن سه مکانا سه مکانا فعلاتن مخبون است سه مکانا فعلاتون مخبون است و خو زل دم و خو زل دم فعلاتون مخبون است و خو زون قم فاعلا تن مخبون است پوش متعلمن فاعلا تن مخبون است پوش هیچ مشکلی نداریم و بیان فاعلا تن اینم مخبون است پوش میتونه فاعلاتون بیاد هیچ فرقی هم نداره پس ببینید پنجتا از فایلاتون ها فایلاتون شده مخمونه شده اولی فاعلاتون عروض هم سه مکانا تابع زرف شده و بیانا فایلاتون هیچی شما ازش از علت توی ضرب بیت نمیبینید نه علت حسب رو و نه علت قصر رو پس سالمه از این جهت سالمه صحیح پس درست است این بر وزن رمل تام صحیح گفت اما بیت دومش رو نگاه کنید بت بَت بل وطلبو بِل سالم هست. وطلبو بل لُبُو سالم است بَت لُبُو بِل هستش فَاعِلاتُن اَب قَلي يا یا فاعلاتن سالم. اما نگاه کنید، عروز آمده تل مدا، یا تل مدا، تل مدا فعالن. عروز این بحث گفتیم که همیشه محظوظ است فعالن، تل مدا. لایس. کلل لیس کلل فاعلاتن خیله یشهد خیله یشهد فایلاتن نرهانا فایلاتن اینجا ملاک ماست که ما نگاه میکنیم میبینیم ضربه بیت سالمه فائلاتون نه علت نه ببینید فرقی هم بین فائلاتون و فائلاتون نیست توی بیت اول زربش فائلاتون مخبونه بود تو بیت دوم فائلاتون علت نیست زحافه زحاف هم قابل ادامه نیست لذا بیت اول زربش فائلاتون بیت دوم فائلات معیار نامگذاری هم زربشه. عروزش نیست چون عروز تو این بهر محضوفه است فائلون اگر بگید که چرا مصرع اول از بیت اول عروزش محضوفه نیومد اگر شرط است میگیم به دلیل اینکه بیت مصور بود و عروس در بیت اول تابه سر این چیزایی که الان اینجا تو این سه میخونیم همین ها اونی که شما میتونید ببینید و مورد لحاظ قرار بدید الملاحظو فی زین البیتین، بیتین اونی که لحاظ میکنید در این دو بیت اینه ان ذهاب الخبن این که ذهاب و دخل علا عدد من تفیلات هما زهاف خون داخل شده بر تعدادی از تفعیلات اینها علا عدد من تفیلات هما تو این دو تا بید بر تعدادی از تفعیلاتشون زهاف خبن داخل شد و مخبونه هستند و دخولهو غیر لازم زهاف است جاری مجرای علت نیست داخل شدنش لازم نیست و ان علت الحذف باز میبینید که علت حذف قد دخلت علی عروض البیت سانی علت حذف داخل شده به عروز بیت دوم عروز بیت دوپم این لازمه چون عروض بیت دوبام اصلا عروض بحر رمل همیشه محصوف است و هیه لازمتون یجب با به هر شاعر واجبه که شاعر بهش مغید بشه عروضش همیشه محصوف است تو تام میگه پس چرا عروض بیت اول نبود جوابشینه اما تفعیلت طول فی بیت ال اوله اما تفعیله عروز در بیت اول لم تعت محزوفتن محزوفه نیامده اما تفعیلت الاروز فی بیت ال اوله لم تعت محزوفتن چرا؟ لعن البیت بیت فی هازن مسرعون زیرا بیت در اینجا مسرعه و بیت مسرع عروس تابه ضرب میشه زرب سالم بوده عروز هم در بیت اول سالم شد شد این نوع یکش بعد نوع دو رمل تام مقصور بعد رمل تام محسوف توی موقعی که داشتش علتها رو میگفت توی اون تغییراتی که گفتش آرز میشه بربر اول علت حذف رو گفت بعد علت قصر رو گفت درست شو؟ علت حذف بعد علت قصر حالا اگر شما بخواید از نظر عقلی نگاه کنید اگر شاعر بره سراغ جیم جیم رمل تام محضور یا بره سراغ قسمت ب رمل تام مقصور کدومش براش راحت تره؟ یعنی سرودنش راحت تره قطعا جیم راحت تره بیدونی چرا؟ چون عروزش که محذوفه هست عروز محزوفه است تو این برد ضربش هم بشه محزوفه دیگه اون موقع بیت مسرح و غیر مسرح هم فرقی نمیکنه. چون عروز دابع ضربه دیگه هر دوتا یعنی از بیت یکش تا صدش همش اینطوری میشه فائلاتون، فائلاتون، فائلاتون، فائلاتون، فائلاتون، فائلاتون راحت میسراید و میره رمل تامه محذوف از هر ستای اینها راحت تره از همین صحیح هم که خوندیم راحت تره چون تو صحیح هم دیدید که عروزش میشه فایلون ضربش میشه فایلاتون بعد بیت مسررش هر دوتاش میشه فایلاتون اما در رمل به محضوف میشه فایلاتون، فایلاتون، فایلاتون، فایلاتون،, فایلاتون فایلاتون فایلاتون فایلاتون فایلاتون تا آخر هم ادامه میده راحت پس بهتر بود که قبل از اینکه رمل تام مقصور رو بگه رمل تام محضوف رو میگف همون تقره چینشی که توی متن کتاب تو اون تغییرات گفت اول زحاف خبل رو گفت بعد علت حصف رو گفت بعد علت غصف رو. ولی توی نوشتار آمده اول علت غصف رو گفته بعد علت حسب خوب. حالا نگاه کنید ببینید من جیم رو براتون میخونم یعنی علاقه هست فرقه نمیکنه رمل تام محزوف کدومه؟ خوبه ماکانت تفعیلت و عروزهی محزوفه تفعیل عروزش محزوفه است اصلا توی این بهر تفعیل عروز محزوفه است خوبه ماکانت تفعیلت و عروزهی محزوفه فایدون. و ضربه کذالک ضربش هم اونم محصول نگاه کنید اینجا بحث منه میگه و ها زنده و او من بحر الرمل اکثر و من غیره این نوع از بحر الرمل بیشترین شیوع را دارد از غیر خودش یعنی توی این اسم رمل تامه صحیح رمل تامه مقصور و رمل تامه محذوف اگر از بپرسن کدومش از همه بیشتره میگیم رمل تام محظوف. علتش چی بود؟ من گفتم سهولت هرچی آسونتره تره رغبت به اون بیشتره میکنون طبیعیه دیگه مردم دنبال سختی که نمیرن آه لذا این نوع از بهر رمل اکثر و شیوعا من غیره شیوعش از همه بیشتر فهمیدیم دیگه نه اکثر و شیوعا من غیره نه و قول شریف رزی مثل قول مرحوم سید رزی شریف یعنی سید سید رزی جامع نهج البلاغه صاحب نهج البلاغه اعلی الله مقامه این مرد بزرگ مثل این کلام او که در مرسیه حضرت عبا الحسین علیه السلام اکثر و شوی و امه غیرهی نه و قول شریف رزی یرسی علی امام الحسین نه علیه السلام مثل قول شریف رزی در حالی که مرسیه میکرده حضرت حضرت عبا عبادلال فس این دیگه خیلی راحته نگاه کنید این دو بیت رو سوال آیا بیت و مسرع دارد؟ داشتم هیچ تأثیری بگید نداشت چون گفتیم از بیت یکش تا بیت صدش هر چقدر که هست حتی بیت هزارش وزنش در میاد فاعلاتون فاعلاتون فاعلون فاعلاتن فاعلاتون فاعلون تا آخر بیت مسرح و غیر مسرح هم ندارد نگاه کنید چی میدون کربلا لازلت کربن و بلا ما لقی اندکه آل المصطفى کم علا لما سر او من دمن و من دمئن جدی این شعر از قصاید معروف مرحوم سید عزیز است که ما در ادب متعهد هم این قصیده رو میخواندیم برای دانشجویان خودمون دو بیترش رو الان با هم می‌بینیم کربلا این کربلا مناداست به حذف حرف ندا یعنی یا کربلا ای کربلا منادای مفرد معرفه است مبنی بر زم است تقدیرند مثل اینکه یوسف اعرض اعرز انهازا در آن آمده یوسف یعنی یا یوسف کربلا یعنی یا کربلا ای کربلا لا زلت کربن و بلا لا زلت لا بر سر فعل مازی در بیاد اگه تکرار بشه حرف نفیه اگه تکرار بشه حرف نفیه مثل اینکه که بگیم لا ضرب از ایدون و لا شتم لا ضرب از ایدون و لا شتمه یعنی زید نزده و نفهش داده نسید تو قرآن میگه لا صدق و لا سلا لا صدق و لا سلا یعنی این آدم نه تصدیق کرد نه ایمان آورد و نه نماز خواند عبادت کرد اگر تکرار بشه حرف نفه اگه تکرار نشه دعاست اگه تکرار نشه دعاست اینجا تکرار نشد لازلت کربن و بلا لازلت یعنی پیوسته باشی پیوسته باشی کرب مصیبت و بلا و ناملایمات و بلا یعنی ای کربلا پیوسته باشی نفرین کرده بلا و مصیبت پیوسته بلا و مصیبت در تو باشد تو پیوسته بلا و با مصیبت باش زلته تا اسمش کربن و بلا یعنی کربن و بلا ان خبرش خوب لازلت نفرین بود دیگه مثل به که بگیم لازلت مریضا لازلت مریضا یعنی انشاءالله همیشه مریض باشه اما اگه بگیم لازلت صحیحا و سالمان یعنی انشاءالله همیشه صحیح و سالم باشه کربلا لازلت کربن و بل پیوسته در بلا. پیوسته در و مصیبت مصیبت و بلا باش ما لقی چون ما لقی این دکه آل المصطفی ما لقی لقی یعنی لقیه به خاطر وزن شعر فعل مازی مبنی بر سکون شده بلا فعل, فعل مازی مبنی بر فتحه لقیه ملاقات کرد برخورد کرد این ما مای استفامی است ما لقیه اندکه آل المصطفى علامت سال چه دیدند چه برخورد کردند پیش تو اندکه آل المصطفى خاندان پیامبر خاندان پیامبر آل المصطفى و آهل لقی است. چه چیزی برخورد کردن در نزد تو اندکه؟ این ما مفعول لقی است. استفهام اینجا برای تعظیمه. چه کشیدند آل مصطفى در پیش تو؟ یه قابل توصیف نیست چه کشیدند اونها در نزد تو ای کربلا کربلا روی خوش نبینی همیشه کرب و بلا باشی ای کربلا چون چه کشیدند چه دیدند چه برخورد کردند در نزد تو آل مصطفی توضیح میده کم علی که لما سر او من سالم ساله و من دمعن جرا اون لما سر او اون جمله اون وسط معترضه است اون سر او فعل شرط لماست سر یعنی به خاک انداخت کشت سرعه یعنی به خاک انداخته شد کشته شد سرعه یعنی باب تفعیلشه یعنی بسیار به خاک انداخته شد بسیار کشته شد باب تفعیل برای مبالغه است تکثیره لما او واو میخوره به آل و به آل هنگامی که اینها به شهادت رسیدند به خاک افتادند این آل مصطفی هنگامی که به خاک افتادند به شهادت رسیدند کم علا تربک مندم ان سال و مندم ان جرم این کم علا تربک ترب یعنی تراب این کم علا تربک در واقع دلیل جواب اون لماست کم علا توربک چه بسیار بر تو بود چه بسیار بر خاک تو بود کم مبتدا علا تربک خبر این کم کم خبری است چه بسیار بر تو ریخت بر خاک تو بود چی این من، بهش میگن من بیانیه تمیز بر اون کمه. چه بسیار برخاک تو بود، من دمن از خونی که ساله، صفت خونه دمه، خونی که روان گشت و من ان اتم جای من دمه و از عشقی که جرا این صفتو داره جایی شد. وقتی که آل مصطفی به شهادت رسیدند لما سر او چه بسیار بر خاک تو ریخت چه بسیار بر خاک تو واقع شد از چی یعنی چه بر برواق... خاک تو ریخت چه بسیار بر خاک تو واقع شد چی از خونهایی که سیل وار را افتاد و هایی که جاری شد خونهایی که سیلان پیدا کرد خون شهدا، هایی که جریان پیدا کرد عشق و سران. یعنی چه بسیار برتریخت خون شهیدان و عشق اسیران وقتی که آل مصطفی در سرزمین تو به شهادت رسیدن کم علا طور به کلم ما او من دم سال و من دم ان جرم زیبا بود شعرش کم علا طور به کلم ما او من دم سال و من دم ان جر. بین دم و دم جناس ناقص قشنگی تو این عبارت شما می‌بینید حالا بخونیم یه راحت بلا لا فائلا تون ذلت کربن فائله تون و بلا و بلا فعلون باید فاعلون می آمده. حالا زعاف خبنم داخل شده باشه تأثیری نمیکنه شده فعلان محزوفه مخبونه است محزوفهش لازمه اما مخبونهش لازم نیست چون میبینیم الان توی مقابلش توی مثل دوم دیگه نمیاد لازم نیست فعلان محزوفه مخبونه ما لقی این ببینید این رو اگه میخوندیم ما لقیه دیگه وزن به هم پهم برید ما لقی این فائلات دکه آلول فائلات مخبونت باشید مصطفی فائلون بله این است و واجبم از محضوفت باشید کم الی تر کم الی تر فاعلاتن ما لما بکه لما فعلاتن مخبون است سر او سل ر او یا فاعلن فعال میتونست فعالون بیاد باید چه مشکل نبود هم نبودش سوره او حالا اگر اینجا میخوندیم سوره او یعنی مبالغه نبود کم علاوه تور بکلم ما سوره او سوره او میشد فعالون سره او. می شود فایلون. چه اتفاق رو هیچ فقط می غیر از محزوف مخبونه غیر از محزوف مخبونه هم میشه. سوره او فایلون ش ولی سر او خواندیم چون شعر مبالغه داشته سر کم علا تر به بکه لما فعلاتن سر او فایلن من دمن سا فاعلاتن ل و من دم فعیلاتون است باشه این جرا این جرا فائدون محضوف است توش نداره دیگه اینقدر توضیح دادم یه جایی برای بیان باقی نگذاشتم داشتم الملاحظ الملاحظو هنها اونی که ملاحظه میکنید در اینجا اینه انزه ها فالخبن قد دخل علا عدد من تفعیلات بیتگی زحاف خب داخل شده بر تعدادی از تفعیله های دو بیت و خوبه غیر و لازمه و این لازم هم نیست و خوبه غیر و لازم و علت حذف قد دخلت الى تفعیلت العروز و زرد و علت حذف داخل شده بر تفعیله عروز و زرد و ال قد دخلت ال تفیلت العروض و ضررب و یه لازمتون و این لازمم هست. در عروزش که همیشه هست در ضربش هم شاعر انتخاب کرده و یه لازمتون و, و, و شاعر و یجب ان یتقا بها به شاعر واجبه که بهش بشه خب این که گفتیم بعد دوم میخوند ما براتون دوم خوندیم بیاید سر رمل تام به مقصور که دیگه راحته دیگه خوندنش خب آکانت و عروزهی محصوفه عروزش محصوفه است که همیشه محصوفه است تو این تام بهر رمل فایلون و ضربهو مقصوره فایلان اما اذا كان و مسرعا اما اگه بیت بیت مسرع باشه عروضش تابه زر میشه هر هم میشه فاعلان یعنی اگر یه دو بیتی داشته باشیم بیت مسرع داشته باشه این شکلی میشه فاعلاتن فاعلاتن فاعلان فاعلاتن فاعلاتن فاعلان بیت بعدیش میشه فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلان،, فاعلان تا آخر همینه میرهت اما ازاکان ال البیت و مسر و انتکون و تقییلت و عیزد باز میشه مقصوره نه و قول احمد شوقیه ان فرنسا مثل قول احمد شوقی که در خصوص فرانسه گفته یعنی موقعی که در تبعید بوده در فرانسه در اونجا این رو بیان کرده احمد شوهنی عن فرانسا میگه یا فرانسا نلت اسباب از سما و تملکت مقالی دل جوا قل به ان نصر علی دولته و تنح عن عرش الهوا میگه یا فرانسا ای فرانسه نلت اسباب سما اسباب جمع سبب یعنی پله پله های آسمان را مراتب آسمان را نائل شدی فت کردی قله های آسمان رو پله های آسمان رو؟ درجات آسمان را در نلت نلته. اسبابا مفعولش. منظورش چیه؟ منظورش اینه که ای فرانسه انقدر این آسمان خراش های تو بالا رفته که دیگه آسمان رو کردی. آسمانی باقی نگذاشتی. آسمان را در نبردیدی. مراتب و پله ها و غله آسمان را در نبردیدی. ای فرانسه. و تملکته و مالک شدی و تملکته و تملک کردی مقالی دل مقالید مقالی جمع مهدلاد یعنی کلید و کلیدهای جو رو به دست آوردی مالک شدی پس ای فرانسه تو آسمان رو فرد کردی پله های آسمان رو در نوردیدی و کلید های آسمان رو مالک شدی خب کدام پرنده هستش که با بلند پروازی معروفه اقاب کل و نصر مغلوب شده اقاب در بلند پروازی خودش میگن این اوقات بلند پروازه ولی او مغلوب شده تو آسمان رو از دست او بگید درآوردی آوردی قل و النسر رو دولتی دولت یعنی اون منطقه حکومتیش تو از دست او بیرون درآوردی آسمان رو غلب النصرو علا دولتی مغلوب شده در حکومت خودش آسمان دیگه مال او نیست غلب النصرو علا دولتی. و تنحها تنحها یعنی ابترد و کنار کشیده لکه به نفع تو, تو. فرانسه کنار کشیده عن عرش الهوا عرش یعنی تخت از تخت آسمان از صفحه آسمان بنفع تو رفته کنار گفته ی آسمان مال تو دیگه من نمیتونم خب غلب النسر علی دولتهی و, دولته و تنها از بهجای خودمن و کنار کشیده بهنفع تو عن عرش الحوا. آیا بیت مسرع دارد یا ندارد بله اسباب سما مقالی مقالید الجواع دلی بعد بیت دوم علاد و تی ارشل هوا علادولتی دیگه ندید خوب میخوام بخونم یه نکته ای هم توشه که تو بیت دوم بهتون خواهم گفت نگاه کنید خوب دقت کنید میگه یا فرن سا فاعلاتن تر تو چیزی نیست نلت اس فائلان تو بس سما فائلان مقصور است بس سما فائلان مقصور است حالا چرا مگر نباید محزوفه می آمد نه اینجا محذوفه نیومده عروضش چرا چون میخواد تابعه ضربش بشه چون بیت مصوره فائلان و تملک فاعلاتن مخبون اس باشه ت مقالی فاعلاتن مخبون اس باشه هیچ مشکلی نداره دل جواب فاعلان مقصود است اینجا انتخاب شاعره عروضش هم دابین شده چون بیت مصرح بود تو این بیت بیت دوم او نه ب است ولی اگر اینجا به جای قه ب خونده بشه ب نقل قولبن ب با به تفیل خونده بشه یعنی به شدت شکست خورده اقاب در دولت خیش. به شدت شکست خورده که این با شاعر سازگار مبالغه است اگر این باشه خونده بشه خیلی قشنگ تره قل ونصر و علا دولته به شدت شکست خورده اقاب در حکومت خودش در مقابل تو به شدت شکست خورد خب اگه قل و باشه اون موقع چی در میاد میشه فایلاتون دیگه حتی مخبونه هم نیست این درسته قل و علی رو علا دولتی قل و فایلاتون قل و النس فایلاتون رو علا دو فایلاتون فعلان. لطهی فعیلان این الان مخبونه محزوف است محزوفش واجبه درست شو فعیلان بیاد اما مخبونش لازم نیست میتونست بیاد میتون و تنحها فعیلاتون لکه انعر فاعلاتون شل هوا فائلان چیزی نداره فقط ای که ما توش داشتیم تو اون قل بنس بود که من گفتم اگه قل خوانده شود که باب تفعیل بیاد برای مبالغه و معنا بشه به شدت شکست خورد اقابان النصر اقاب ها به شدت شکست خوردند در دولت خودشون در حوزه حکومتی خودشون که آسمان مال اونها بود به شدت شکست خوردند و کنار کشیدند به نفع تو از صفحه آسمان خیلی زیباتر از نظر ما. خب بیت اول عروضش تابعه ضرب شد فاعلان فاعلان و مقصوره بود بیت دوم عروزش فاعلن که حالا مخبونه هم شد شد فائلان مطلبی نبود ضربش فاعلان بود و در واقع رمل تام مقصور بود الملاحظه اونی که ملاحظه میکنیم و میبینیم اینه ان دخول الخبر این که دخول زهاف خبر علا تفعیلاتهی غیر لازمه دخول زهاف خبر و تفعیلاتش غیر لازمه حتی اونجایی که با عروض زرب هم آمده لازم نیست مثل عروض بیت لتهی لطهی غیر لازم الا انتفعیلت از ضربهی یجب و انتکون مخصوره جز اینکه که ما میبینیم تفعیل ضربش واجبه که مقصوره باشه تفعیل ضربش مقصوره است تو بیت اول درست شد دل تو بیت دوم شل هوا اینها مقصوره هستند زربن دیگه ان تفعیلت ضربهی یه ان انتکونه مخصوله کما آره راید و تفعیلت عروزهی یه ان انتکونه محضوفه. تفعیله عروزش هم باید محظوفه باشه. بله دیدیم تو بیت دوم شما دیدید لتهی فعلن محظوفه بود حالا مخبونه بودنش میتونست باشم میتونست باشد یه ان انتکونه محظوفته میگه بچه تو بیت اول نیست نگه الا فیلمسرر مگر در بیت مسرع که در بیت مسرع بس سماع اسباب بس سماع بس سماع تو بیت اول فاعلان اونجا به شکل مقصوره آمده به شکل محزوخه نیومده الا فیلمسرره فاعله ها یجبا انتو زیرا اینجا این تفعیل عروس ف نها یعنی تفعیل عروس یجب عن تشابه تفعیلت الزرب تشابهه غلط نوشته یش تشاهه تشابهه زمیر داخل تشابهه مثل عنها میخوره به تفعیله عروس زیرا تفعیله عروس واجب است که شباهت برساند تفعیلت ضرب. به تفعیله ضرب کما رأیته تفعیله عروزش باید تابع تفعیله ضربش بشه بهر رمل قسمت تامش تمام شد و ما گفتیم که رمل تام محظوفش بیشتر است از رمل تام مقصورش و رمل تام صحیحش چرا چون سرودن در او راحت این سه قسم تموم شد قسم بعدی که باقی مانده رمل مجزوعه و نسبتا هم سادست میتوانم تو این چند دقیقه ای که از وقتم باقی مونده براتون بخوانم ولی قصدم اینه که این یه تیکه کوچک رو بگذارم که انشاءالله الله تعالی در جلسه بعدمون بحر رمل رو یه تکراری روش داشته باشیم که بحر رمل تکرار بشه این قسمت مجذوعش رو با هم دیگه که هر درسمون تقریبا دو مرتبه تکرار شده باشه ضمن اینکه من بسیار آروم میگم لغات و اعراب و مطالبش رو هم بیان میکنم که شما بتوانید راحت جمع جور کنید و استفاده کاملی داشته باشید پس بنابراین ما از بهر رمل قسمت مجزوعش رو انشاء الله به شرط اینکه حیات باشد و سلامت باشد برای شما در جلسه بعد خواهم خوند و شما الله خلاصه نویسی کنید مطلب رو پیش خودتون داشته باشید که اینها رو اگه خلاص نویسی کنید شاید یک نصف صفحه هم نشود با عبیاتش درست شد؟ بعد دو مرتبه سه مرتبه نگاه میکنید وقتی یاد گرفتید عبارت رو و فهمیدید دیگه قدرت حفظ است یه مقدار حفظ میکنید انشالله موقع امتحان هم یه نگاهی بهش میکنید و حفظتون رو تثبیت میکنید و راحت میتونید بنویسید و ما هم در امتحان قطعا همین ابیات خودمون رو که حل کردیم به شما میدیم ابیات ناشنا بهتون نمیدیم که شما در معانیش گیر کنید در فهمش گیر کنید در خوندنش گیر کنید و نتوانید بخوانید بلکه ابیاتی رو میدیم که بارها و بارها خودمون معنا کردیم لغاتشو بیان کردیم تقدی کردیم و شما در کتابتون هست و نوشته که طریقه یادگیری برای شما راحت باش انشالله که هیچ گونه دقدره و استرس و استرابی هم نداشته باشید از هر گونه بلایی به دور باشید و در پناه خداوند موفق و معید تا ان هفته آینده شما رو به خدا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم